باب هفتم در تاثیر تربیت حکایت یکی را از وزرا پسری کودن بود پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمیباشد و مرا دیوانه کرد، چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد، هیچ سیقل نکو نداند کرد، آهنی را که بدگهر باشد، سگ به دریا هفت گانه بشود، که چود تر شد، پلیتر باشد، خر ایسا، گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد.